سه ظهر جوم ای به محمد رضا سرشار در روزگاران گذشته و در سرزمینی دور مرد ثروتمندی زندگی می کرد به نام برزو برزو اگرچه خونه بسیار بزرگی داشت با یه حیات که به اندازه یک شهر بود و اگرچه خونه او پر بود از خدم و حشمی که از صبح تا شب میچرخیدند و تمام کارهای ریز و درشتش را انجام میدادند. اما با این حال درس او در مالدوزی و جمع کردن پول و طلا خواب و خوراکش رو گرفته بود. در تمام دنیا هم تنها چیزهایی که میتونستند برزو رو خوشحال کنند طلا بود و دخترش شیرین. راستی یادم رفت بگم که برزو با تنها دختر شیرین توی اون خونه درندشت زندگی میکرد. چون توران مادر شیرین چند سال پیشتر در اثر یک بیماری لاعلاج چشم از جهان خاکی بسته بود و به دنیای باقی رفته بود و برزو مونده بود و دخترش دختر کوچیکی که درست شبیه توران مادرش بود با همون چشم های ای و موهای فردار طلایی و با همون مهربونی و اخلاق دوست داشتنی هلقصه همه چیز به خوبی و خوشی پیش میرفت تا اینکه یک روز اتفاق عجیبی افتاد که زندگی برزو و شیرین رو به هم ریخت اون روز نزدیک غروب برزو توی حیات خونه قدم میزد و با خودش فکر میکرد که اگه تمام طلاهای دنیا مال او بود چه کارها که نمیتونست با اونها انجام بده میتونست همه چیز خونه رو از طلا بسازه درها، پنجرهها، میز و سندلیها و حتی قاشقها، برزو تو همین فکرها بود که یک بار پیرمردی رو دید که داشت به طرف او میومد. پیرمرد کوتاه، قد بود صورت ای داشت و شنل سیاهی هم روی شنه هاش انداخته بود برزو اول که او رو دید خیال کرد یکی از مستخدم هاست اما بعد که چشمهاش رو ریز کرد و به دقت پیرمرد رو نگاه کردید دید نه انگار این پیرمرد غریبه است و تا حالا او رو اونجا ندیده این بود که بی مقدمه گفت آهای پیرمرد تو کی هستی و اینجا چه میکنی کی تو رو به این خونه راه داده پیرمرد که انگار برزور رو خوب میشناخت لبخندی زد و گفت حق داری منو نشناسی. چون تا به حال منو ندیدی اما حالا مجدگانی بده که قرعه بخت به اسم تو افتاده و من اتفاقی به اینجا اومدم من جادوگرم جادوگر برآورنده آرزوها من از آرزوهای همه مردم خبر دارم و هر بار به سراغ یکی از اونها میرم حالا هم اومدم تا آرزوی تو رو برآورده کنم برزو که هنوز حرفهای پیرمرد رو باور نکرده بود نگاهی به سرتاپای او کرد و گفت اگه راست میگی بگو ببینم آرزوی من چیه جادوگر خندید و بدون تردید گفت تلا تنها آرزوی تو تلاست درسته؟ برزو آب گلوش رو فرو داد و یک قدم عقب رفت و بعد خیلی آروم پرسید یعنی تو واقعا میتونی آرزوی منو برآورده کنی؟ جادوگر کلاه سیاه و بلندش را رو از روی سرش برداشت و به هوا پرتاب کرد و کلاه وقتی به زمین افتاد تبدیل شد به یک دست لباس مردانه زیبا. بعد گفت بله اما به شرطی که تو هم در عوض چیزی به من بدی. برزو که رنگش سفید شده بود و به سختی سعی می کرد طبیعی صحبت کنه گفت اگه بتونی همه طلاهایی رو که میخوام به من بدی منم بهترین گل سرخی رو که دارم به تو میدم عزیزان خوبه بدونید که این گل سرخ گلی بود که در تمام دنیا مستمانند نداشت برزو اون رو خیلی دوست میداشت همه دور و حوالی اونجا معروف و زبان زد شده بود و حتی مردم چین و ماچین و هند و دیار فرنگم، اسم اون گل سرخ رو شنیده بودند و بعضی از اونها اون رو با شکوه ترین گل عالم هستی میشناختند خلاصه جادوگر بعد از کمی فکر کردن پیشنهاد او رو پذیرفت و وردی خوند که با اون برزود است دست به هر چه میزد تبدیل به طلا میشد در این وقت احساس عجیبی توی جان برزو افتاد او احساس کرد که برق او رو گرفته بدنش شروع به لرزیدن کرد و اونقدر لرزید که دیگه داشت جلوه چشمهاش تیره و تار میشد. اون در همون حال جادوگر رو دید که داشت از پیش او میرفت و بلند بلند میگفت: همین همینجا بیا و بگو گل سرخ دوباره شکوفه کن وقتی که برزو چشمهاش رو باز کرد همه چیز به حال اولش برگشته بود و اثری از پیرمرد جادوگر و گل سرخ نبود. برزو کمی اطراف رو نگاه کرد. وقتی دوباره حالش جا اومد به یاد جادوگر افتاد و دستهای جادویی خودش نفس عمیقی کشید. نمیدونست اس پیرمرد رو در خواب دیده یا بیداری. هنوز گیج بود دستش رو به درخت کاجی که اونجا بود گرفت تا بلند بشه اما ناگهان احساس کرد که پوست زبر درخت زیر انگشتهاش صاف و محکم و سرد شده دستش رو سریع کشید و درخت رو نگاه کرد اولش اون چیزی رو که دیده بود باور نکرد چند بار چشمهاش رو بازو بسته کرد و باز به درخت خیره شد بله از ریشه تا نوک شاخه های درخت تلائی شده بود طلای براغ و درخشان برزو یه برگ از درخت رو کند و به اون خیره شد باورش نمی‌شد که حتی برگ های درخت هم تبدیل به تلاش شده باشه برگ دیگه کند و باز نگاهش کرد و دوباره یک برگ دیگه کند و اونقدر برگ کند و چند که بغلش پر از برگهای طلایی شد او که از خوشحالی توی پوستش نمیگنجید بی اختیار برگها رو به هوا پرتاب کرد و زیر باران برگهای طلایی به طرف تالار حالا دیگه همه ی فکر و ذکر برزو دستاش بودند دستهای جادویی که میتونستن اونقدر طلا درست کنند که او رو به ثروتمندترین آدم دنیا تبدیل کنه برزو وقتی به تالار خونش رسید دستش رو توی جیبش کرد تا سکه های آهنی رو تبدیل به طلا کنه اما ناگهان سنگینی زیادی رو روی شنه هاش حس کرد به طوری که از فشار اون پشتش داشت خم می شد و نزدیک بود که به زمین بیفته برزو لبخندی زد و گفت عجب قدرتی پیراهنم هم, هم تلا شده این غیر قابل بابره، بی نظیره اگرچه حالا او مجبور بود برای بیرون آوردن پیراهنش دکمه های اون رو بشکنه اما با خودش گفت چه داره؟ دوباره یه پیراهن دیگه میپوشم یا اصلا دیگه خودم لباسامو در نمیارم پس مستخدم برای چه روزی خوبه بعدم پیراهن رو به زور در آورد و گوشه ای پرتش کرد برزو اگرچه چه اونقدر هیجان زده بود که همه ی فکر و ذهنش متوجه طلا بود و دستاش اما یک دفعه به یاد شیرین افتاد بهتره این قدرت جادویی رو به نشون بدم و غافل گیرش کنن. صدای آواز قناری او رو متوجه خودش کرد قناری توی قفص بود و داشت آواز میخوند برزو میدونست که شیرین خیلی به اون قناری دل بسته و هر روز با اون صحبت و درده دل میکنه و بهش آب و دونه میده این بود که با خودش فکر کرد قفس اون رو تبدیل به طلا کنه و قفس طلایی رو همراه با قناری داخلش به شیرین هدیه بده. به همین خاطر دستش رو به طرف قفس دراز کرد اما قناری که خیال میکرد برزو برای او دونه آورده نوکش رو به طرف دست او برد و برزو تا اومد به خودش بجنب به دستش رو پس بکشه قفس و قناری هر دو تبدیل به تلا شده بودن برزو خشکش زد چون میدونست که اگر شیرین قضیه رو بفهمه خیلی ناراحت میشه پرنده بینوا و بینفس توی دستهای برزو خشک شده بود و انگار با چشمهای طلاییش از او میخواست که نجاتش بده برزو که خیلی ناراحت شده بود با خودش گفت از این به بعد باید خیلی مواظب باشم من حتی نمیتونم کارهای روزمرم رو انجام بدم بعد با خودش فکر کرد عادتهام هام رو چه کنم مثلا من از هرکی که خوشم میاد با دست میزنم روی شونه هاش اما حالا با این همه خودش رو دلداری داد که ای بی نداره باید از این به بعد بیشتر مواظب باشم و عادت هام را هم ترک کنم این برای به دست آوردن چنین ثروتی بهای زیادی نیست حالا دیگه شب شده بود و گرسنگی به سراغ برزو اومده بود این بود که به طرف تالاری که محل غذا خوردن بود رفت توی تالار اولین چیزی که توجهش رو جلب کرد ظرف میوه های روی میز بود میوه های رنگارنگ با نظم و ترتیبی خاص توی سبد چیده شده بودن برزو دهنش آب افتاد دستش رو به طرف سبد برد و یکی از سیبهای اون رو برداشت دهنش رو باز کرد و با اشتها یک گاز محکم به سیب زد اما لحظه‌ای بعد مثل شیر خشبگی نعره کشید و در حالی که با دست دهنش رو گرفته بود و فریاد می‌زد، دور تالار شروع به دویدن کرد چند نفر از پیش خدمت ها با عجله به طرف تالار دویدن و پرسیدن چه اتفاقی افتاده سرورم برزو هم غرغر کنان گفت حواسم نبود سیب رو تبدیل به طلا کردم تا اومدم گازش بزنم دندون جلوییم خورد شد پیش خدمت ها بدون اینکه چیزی بگن ماوت تو مبهوت به او زده بودن و ناباورانه نگاش می کردن. برزو که از خشم و درد صورتش سرخ شده بود فریاد کشید یعنی شما خیال می کنید من دروغ میگم، بعدم سیب بزرگی از توی کاسه برداشت و به طرف یکی از پیشخدمت‌ها پرت پرد کرد. برزو که انگار از ترس و تعجب پیش خدمت ها لذت می برد دستش رو به طرف قاشقای روی میز برد و گفت حالا اینجا رو نگاه کنید. این قاشقا رو که می بینید خیلی معمولین و جنسشونم از فلزه اما وقتی که من به اونها دست میزنم، ببینید چطور می شن. بعد اونها رو توی دستش گرفت و همه رو تبدیل به طلا کرد. مستخدم ها که تا اون وقت چیزی به این عجیب و غریبی ندیده بودن همونطور با دهن باز مونده و چشمهای از کاسه در اومده پا به فرار گذاشتن و اونجا رو ترک کردن. حالا دیگه برزو تنها مونده بود، و اگر چه دور دورو برش پر از میوه و غذا بود اما او حتی نمیتونست یک لیوان آب بخوره یا یک کم از کبابی رو که برای شامش درست کرده بودن مزه مزه کنه برزو که به حال بیچارگی و درموندگی افتاده بود از اونجا که گرسنگی بد جوری بهش فشار آورده بود سعی کرد هر طور که شده گرسنگیش رو رفت کنه اما تا کارد و قاشق ها رو برمی داشت اونها تبدیل به تلا می و برنج و کباب هم تا به دهنش می رسید مبدل به تلا شده بود به هزار زحمت در حالی که سرش رو نزدیک بشقاب آورده بود تونست مثل حیوان ها غذا بخوره و کمی از گرسنگیش رو برطرف کنه برزوکه که همه چیز حتی تلاهای دوربرش رو بی استفاده می دید آهی کشید و بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. برزو از حال و روز خودش خسته شده بود و دیگه تاقت نداشت و حالا تنها شده بود و حالا حتی از پس ابتدایی ترین کارهاش هم بر نمی اومد تصمیمش رو گرفت و با خودش گفت میرم پیش جادوگر و از اون میخوام که دستهام رو به حالت عادی برگردونه خلاصه ارزو کفش و کلاه کرد و ازمش رو جزم کرد که راه بیفته اما تا خواست به بیرون از خونه بره غررش رد او رو سرجاش میخوب کرد و برق چشمهاش رو زد یک به یاد صحبتهای جادوگر افتاد که گفته بود حواست باشه که اون وقت بارون نیاد و هوا طوفانی نباشه این بود که منصرف شد و تصمیم گرفت وقتی که هوا صاف شد و باد و بارون تموم شد بره پیش جادوگر و با او صحبت کنه بعدم خسته و ناامید به اتاقش رفت و روی تخت خوابی که حالا تبدیل به تلاش شده بود دراز کشید و با خودش گفت سعی میکنم بخوابم فردا که هوا بهتر شد ازش میخوام که جادوش رو باطل کنه بعدم با همین فکر و خیال چشمهاش بسته شد و به خوابی همین فرو رفت شیرین اون شب خیلی منتظر پدرش بود تا مثل هر شب با او درد دل کنه و اتفاقهایی رو که براش افتاده بود برای او بگه و بعد هم به او شب بخیر بگه و با خیال راحت چشماشو ببنده و بخوابه اما هرچه منتظر شد خبری از پدرش نشد که نشد این بود که با خودش گفت نکنه اتفاقی برای پدر افتاده باشه نکنه پدر مریض باشه یا آخه تا حالا امکان نداشته که اصلا به اتاق من نیاد و با من حرف نزنه خبری از پرستار هم نشد دوباره زنگ رو به صدا در آورد و دوباره خبری نشد این خیلی عجیب بود پدر همیشه حاضر بود و پرستارها هم همیشه آماده بودن اما اون شب انگار هیچ کس توی خونه نبود شیرین دلش شور افتاد. احساس میکرد چیز عجیب اتفاق افتاده که او ازش بیخبره و احساس میکرد اون شب خونه با اون خونه ی همیشگی فرق داره. رفت و آمدها قطع شده بود و هیچ کس توی خونه نبود. به این صورت ترس و استراب آهسته آهسته به سراغ شیرین اومد. بلند شد و به طرف اتاق پدرش به راه افتاد. و, و میز و صندلی و خیلی چیزای دیگه تلائی شده بودن و خلاصه اوضاع غیرعادی بود. وقتی به اتاق پدر رسید در زد. اما جوابی نشنید. در رو باز کرد و دید که پدرش به خلاف همیشه که لباس خواب می پوشید با همون لباس معمولی روی تختش دراز کشیده و به خواب رفته. هیچ رو اندازی هم روش ننداخته بود. شیرین پاورچین پاورچین به کنار تخت رفت و پتو رو روی پدرش کشید و به صورت او خیره شد. چهره پدر رنگ پریده و غمگین به نظر می رسید. شیرین که می دونست پدرش از فوت مادر بسیار اندوهگین شده، به یک بار حس دلسوزی غریبی نسبت به او در وجودش شعله کشید. به آرومی دستش رو روی دست پدرش گذاشت که یکباره تبدیل به طلا شد. مرد بعد از بیدار شدن از دیده خون بارید و آرزو کرد کاش می و هرگز چون این ای رو نمیدید. دید. آخه حرس پولدار شدن و به دستاوردن طلا بد جوری کار دستش داده